جسته 22م کواید بحث تزاهم در بحث کشف منبع من منبع کشف عموم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیه موقته الله فی العربی روح برباه العالمین له الفدا با استانه از خدای متعال متوسل به پیامبر گرامی نبی عطار علیه السلام بحثمون را آغاز میکنیم بحثی که اشاره کردیم و خارج ازی قبل شروع کنیم بحث کشف اهم و مهمه. و منبع کشف اهم و مهم چه می توانه باشه آیا شرع از که میتواند منبع کشف اهم و مهم باشه یا خلاصه عقل اهم و مهم رو چه کسی باید بشناسه عقل یا شرع یا هر دو این وحث بسیار کلیدیه در بحث رایجی که ما بینیم، به دو بحث باید بپردازیم توجه کنیم یکی بحث کبرویه یکی بحث سغرویه ما در شناخت اهم و مهم دنبال چه هستیم دنبال شناخت اهم هستیم و تمییز اون از مهم تا چه کار کنیم؟ تا در مقام تزام هم که نمی توانیم مفرری نیست از اینکه یکی از این دوتا رو انجام بدیم و باید خلاصه به هر دو طرف ملتزم باشیم یا از هر دو طرف پرهیز کنیم برای باید یکی رو مقدم کرد مگر اینکه تساوی تصاوی باشه که به تخییر برسیم اگر تخییر نبود و ترجیحی بود ما باید اهم رو مقدم کنیم اینجا پس یه کبرا داریم ضرورت تقدیم اهم بر مهم یه بحث صغروی هم داریم که مسادقش رو بشناسیم خب پس در بحث کبروی می توانیم این سوال رو مطرح کنیم آیا عقل می توانه این ضرورت تقدیم اهم بر مهم رو در بیابه یا اینکه نه این رو نمی تواند بفهمه ما فقط از طریق نصوص دینی باید بفهمیم که اهم بر مهم بر مقدم بشه در مورد بحث مثلت، این مبحث سغروی هم همینطور آیا مسادیق اهم رو عقل میتواند بشناسد؟ مسادیق مهم رو میتواند بشناسند ما دو سه تا مسئله داریم یکی مسئله شناسی و مفسد شناسی اینکه به خودی خود فلان چیز مسئله دارد، مفسد دارد همشابین بحث امکان رو اونجا هم داریم عاقبت چقدر میتواند بشناسد بعد مبحث دوم مصدر سنجی و مقصد سنجی موازنه مصلحت و مقصد است موازنه اهم این طرف به اون طرفه که ببینیم کدام خلاصه ترجیحی داره و بعد هم میرسیم به مسلحت ورزی و اعمال مسلحت و مفزده خب آیا در کشف مصادیق عقل می توانه یا فقط نصوص دینی اینجا بعضی کمی میشبیه همه دیگه اون ضرورتش رو خب عقل می توانه فهمه نصوص دینی هم فل جمله داریم بعض از اون روایاتی که من قبل اول بحث عرض کردم از دلش به طرق مختلف می توانستیم در بیاریم که اهم رو باید مقدم کرد روایت زیبایی آوردیم خب ضرورت رو گفتیم ضرورت رو هم میفهمیم به نظر میرسه که میتوانیم بگیم که عقل میفهمه چرا چون که ترجیح خلاصه یعنی در واقع ضرورت تقدیم اهم بر مهم هم عقلی و شرعیست این بحث کبراش عقلیش که شرعیش که خلاصه نصوص دینی داریم نصوص دینی میشه وجه خلاص شریش وچه تقدیم عقل چی؟ تقدیم عقلی اینی که ترجیح خلاص مرجو بر, بر راجع قبیه این دیگه عقل میفهمه و به اینکه این که ترجیح مرجو مفاسد میتوانه به دنبال داشته باشه خب اینم باز عقل میتوانه یعنی هم به صورت مستقیم میتوانه به هم به صورت با واسطه ترجیه مرجو بر راج قبیه. یک حکم در واقع نفسیه. یک موردی که به خود این موضوع برمیگرده اگر به صورت غیری هم نگاه کنیم تفس در واقع تحلیل غیری هم این رو میرسانه اون تحلیل رو بگیم حالا من اسمشون میذارم تحلیل نفسی خود این ترجیح اهمیت داره چون که ترجیح مرجو هستن قبیهه به علاوه این که میتوانه مفاسدی داشته باشه طبعاتی داشته باشه خب اون بحث سغروی چی؟ در بحث سغروی طبیعتن شهر اگر بخواب بیان کنه امکانش هست امکان معرفی سغراویات سغرا در تزاهم یعنی چی؟ بگه آقا اگه شما بخوای این مرد رو نجات بدی مهمتره یا از زمین دیگران او نکنی خب یه جایی میتوانیم به دست بیاریم پس در واقع امکان معرفی سغرا سغرای تزام هم توسط شر این که امکان داره معنی نداره برای شر همه چیز رو خلاصه میتوانه بیان کنه اما عقل عقل آیا میتوانه توانه عقل چقدره میتوانه بفهمه که این مورد قوی این مقدمه الان من میبینم که ماشینم ترمز بریده من الان ای... م... یا باید بیفتم تو دره یا بزنم یه مرد رو بکشم و ناکار کنم جلوم یا فرمان بچرخانم این وقت بزنم یه گاو رو لطپار کنم عقل شما چی میگه؟ در این موارد میگه آقا اگه اون باید بیفتی که خودکشیه این ور بزنی این مرد رو تکه پاره کنی اینم کشتن دیگران خب کشتن دیگران یا خودکشی مرجوه تره یا کشتن یک حیوان اونم بده ولی این قبهش بیشتره پس عقل در مواردی میتواند سغرای تضاهم رو کشف کند عقل اینجا میتونه اما همه جایی میتواند من این رو ارز کنم مرور خیلی مفصلی داشتم بر مباعث شهیست در تمام مباعثی که در کتاب بحوث شهست بود به صورت سریح بحث تضاهم رو داشت این نکته بسیار مهمه ایشان معطلن نمیرافت بگه آقا این اهم است مهم است میرفت سراغ دلیل این ترجیح اهم و مهمی موقع بحث خدمت شما از کنم امتصال یه مرحله قبلش هم داره که اصلا معرفی شرع که بگی این اهم است اون مهم این رو مقدم کن اون رو مؤخر کن این رو از چه طریق می توانیم بفهمیم یه طریقش اینه که می بینیم حکم دو طرف مطلق یا مقعیدده. اگر یه طرف مطلق بود اون یکی محدود بود. معلوم شه این, این باید این انجام داد. شاید صد معمولا تو بحث بوس بووسشون که شهر او و، چارژلده اونجا برای تطبیق نمی نمیرفتن. بحث ضرورت تقدیم اهم و مهم هم خب یه بحث کلیه اونجا میرفتن نگاه بکنن مسادیق اهم رو مسادیق مهم رو ببینن شعاره چه کار کرده اگر دلیل یه طرف مطلق بود خب این رو باید مقدم کرد پس اون دنبال میرفتن ببینن که های میزشه اطلاق طرف رو نفت کنن تغییر بزنن یا نه پس اون در مقام، پس اصلش اینه که تضاهم روحت بریم سراغ شهر می توانه بشناسه سر جای خودش بعد نسبت سنجی میکنیم پس یه بحث صغربی داریم خب نکته اساسی اینه که عقل که میگیم عقل مستقل منظور ماست عقل غیر مستقل که یه پاش به شهر برمیگرده اون یه بحث دیگه هست به بحث قبلی برمیگرده خب اصولیون تو اینجا برای لا بلای مباحثشون یه نکاتی میشه پیدا کنیم مرحوم آیت لای خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث قاعده ملازمه حکم عقل و شهر کبرای این قاعده ملازمه رو پذیرفتند اما فرمودن آقا مثلاق سغربی در عالم بیرون نداره چرا؟ چون که شما میخواید حکم الله رو با عقل بفهمید حکم الله رو هم از طریق کشف ملاقات بفهمید بله اگر عقل فهمید با حکم شر ملازمه داره شما اگر فهمیدید این ملاک واقعیش چیه سریع به حکم شهره رو به دست میارید ولی اگر شما بخواید بری توان عقل رو بفهمی آقا توان عقل ناقص ها اگر فهمید دب نداره است ولی میفهمه یا نمیفهمه کبرای ملازمه رو پذیرفتن اما در صغرا اشکال دارن میگن نه آقا اقراهی به درک ملاکات واقعی نداره اگر شما یه جای دیدی امری به کاری تعلق گرفت میفهمی که اون کار خوب بوده ضرورت داشته اگه نهی به یه کار تعلق گرفت میفهمی آقا اون کار بعده اجیزه بذارش کنار اون کار نکن خب این میشه چی؟ از این طریق ما کشف میکنیم به صورت انی که آقای مسلحت داشته مسلحتش هم ملزمه بود اینجا هم که نه بود مقصده داشت مفصده هم چون که حکم حرمته معلوم میشه که مقصده ضروری داره به صورت ان... ل... انی میفهمید بله اگه اینجور بود شما میفهمید حالا اونم چقدر میفهمید ریزه کاریش رو ملوم نیست بفهمید خب حالا بحث ملازمه چه رابطی به ما داره این در واقع بحث کلیه شما هم بحث کبراه هم بحث صغرا بعد در واقع خلاصه توانمندیه خب مندیه من تفکیک کردم گفتم مصلحت سنج شناسی و مقصد شناسی با یه مسئله کار دارید یه مقصد کار دارید موازنه نمیخواد بکنید این یه بحث توانمندیه عقل در مثلت سنجی ببخشی شناسی و مفسد شناسی خود این چیه یه معقول است توانمندی عقل در مثلت سنجی و مفسد سنجی مرحله بعده خب منطق اگر ما بحث کبرای ملازمه که به مقبولی اولی نزدیکه چون این حرفی رو بپذیریم تو این بعدی هم خواهد آمد در واقع پذیرش ملازمه حکم عقل و شر تو اون شناسی و مفسد شناسی میام پذیرش یا عدم پذیرش خلاصه این مقبوله خواهد آمد و تاثیر داره تاثیر این دو مبنا در مصلت شناسی یعنی مقوله خوب روشنه اما اگر ما بحثمون در مصلح شناسی نیست در مصلحت سنجیه دو تا رو با هم مقایسه کنیم دو تا مفسده رو با هم مقایسه کنیم یه مصلحت رو یه مقصد رو مقایسه کنیم قالب سگانه ای که همیشه تکرار می کنیم یا حکم واجب و واجب یا تضاوم حرام و حرام یا تضاوم حرام و واجب شبیه این سگانه آیا عقل میتوانه اینجا بفهم م... یا نه اونجا ما کبرای ملازمه رو اگر اونجا قبول نکردیم خب تو این بحث سنجش رو میاد دیگه پس بحث مشابهه اگر نپذیرفتیم اینجا هم تأثیر داره خب پس دو تا بحث داریم یکی کبرای ملازمه است بعد دورستی میرسیم به سغرا. من کبرای ملازمه رو قبول خب یه بحث دومی در هر دو مقوله مسلط شناسی و مسل سنجی هر دو رو داریم در واقع تاثیر مبنای پذیرش یا عدم پذیرش تشخیص مصداق خب اینم خودش خیلی مهمه فقط این نیست که کبرا رو قبول کنیم اول کبرا اگه کبرا رو قبول کردیم خب مرحوم آقای خویی داریم دیگه آقا کبرا رو قبول تو برسه شناسی چناسی حکم شناسی طبیعتا ایشون اونجا حرف بزنه اینجا هم باید بگه دیگه که تو مسلح سنج و مفضل شناسی هم عقل توان داره یا نداره خب حالا اینجا که یه ای هست حالا قبلش اشاره میکنم بحث آقای حاجهای علی دوست یه نقدی دارن اینجا اما قبلش مرحوم خوبی ببینیم این عبارت رو مف... چی میفرموهند محاضرات جلد صفحه هفتاد و منهونا قلنا این الملازمتم بین ادراک العقل مسلحت ملزمه غیر مزاحمت فی فعلن او مقصدت کذالک و حکم و شارب وجوبهی او قرمته و این کانت تامتن به حسب الکبرا بنا انعلا وچهت مذهب الادلیا کما ها صحیح بله عدلیا کبرا رو قبول داره که این ملازمه عقل با شعر وجود داره یا نه ملازمه بین ادراک کل عقل مثلتن ملزن و حکم و شارب وجوبه او حرمته خو این که مثلا بناهن. و اینکه بر مبنای مسعدی است بناع علاقه شده مسائل ادیک و او و سایما ها قبول داریم ملزمه بین ادرا کل عاق ها مشاره ال سقرالله ها غیر و متحققت فل خارج رو مقبول نمی کنیمیم چرا لعدم وجود طریق اقل ال ادراک ملاقات الواقعیه. ما تو دو تا بحث این فرمایششان رو باید تطویخ کنیم یکی تطویخ کنیم تو مسلط شناسی مفسد شناسی و استنباده یه حکم میگه تو یه حکم اگه میخوای بدست بری و ملاکات رو دست دیگه باشه اگه شناختی من قبولم میکنم. اما مهم اینه که نمیتوانی بشناسی چرا نمیتوانی؟ چون ملاکات واقعی رو شما نمی‌شناسید یه چیز دیگه هم اضافه کنین ممکنه مصلحت رو بشناسید مفسده رو بشناسید اما مانع هم داره دیگه مصلحت متعلق رو شناختید اما فقط شاره بر اساس مصلحت متعلق مفسده متعلق که جلو حکم نمی‌کنه باید مانع در جعلم نداشته باشه خود جل هم باید مصلحت یا مقصده ناهمسو نداشته باشه یه مصلحت متعلق خوب باشه اما هم مقصده غالب نباید داشته باشید خودمیگه آقا شو این شعر به خمرم یه منافعی داره اما مزرش چی بیشتره پس شما اگه بهش نسید داره این که فاید میکنه نه بعد ببینید که مفسده غالب نداشته باشه رقیب نداشته باشه تا زینت متعلق بود به علاوه این که باید مانع جل نداشته باشه باشه مصلحت ما کش کردم ملاک رو کش کردم ولی مانع داره مانع در جان داره پس باید غیر از مصلحت متعلق اون مانع هم که بفهمید ممکنه ملاک کش کنید ولی به از دلی در نمیارم شار حکم کرده چون ملاک ممکن مانعه داشته باشه ممکنه خود جهل مقصده داشته باشه تو عالم حکومتداری هم همینطور هست حاکم مثلا نافرض بگیم در زمان دولت قبل دولت آقای روحانی ما از صحبت آقا چی میفهمیدیم این که آقا این مذاکره به این صورت ها درست نیست باید اگرم باشه با این زبابت با آمریکا می‌دیدیم آقا تمایل نداره مذاکره باشه خب حالا آقایان چه کار میکردن؟ روحای خودشون رو میرفتن؟ فرض بگیریم تصریح نکنن تصریح حکمی و امشایی به حرمت ولی شما از قرآن میفهمیدید خبر به دست میاد که آقا میل ندارن ولی حکم صد درصدی مثلا فرض کنیم نکنن خب این جعل حکمه ابراز حکمه ممکن مانع داشته باشه ولی شما مصد وصلتشون میدانید روی کرده رهبری رو میدانید در شعرم همینطور خب. پس این مرحوم آقای خویی جلد سه صفحه 70 در محاضرات میگن کبرای ملازم قبول صغراشت رو ما راه نداریم و ما هم یه مکملی عرض کردیم که آقا اگر هم باشه ممکن خلاص مانع داشته باشه بعد مصلحت مصلحت و مقصد جلب ممکن در تنافی با مصلحت مجعول باشه خب تو این بحث ما خلاصه یه جاهایی بحث عقل رو داریم این ضرورته اگه بخواد تشخیص داده بشه اینجا باید ببینیم قبول دارن ندارن خب من همه امام آقای خوئی یا اون جایی که عقل تخییر باشه تو این موارد سراخ داریم مثلا آی خوئی در جلد سه 269 می الها که متر به ترجیفی با بال مذاهمه حیص و آن نه کانه و بل اقلاق غیره او فم فمینالواز به تقدین مل اهم علل مهمی مقام الامتصال مطلق ال و لاکان ال اهمی متأخران آنها زمانان. از پیموند الان یه بحث لزوم ز... کبرای ضرورت ترجیح بود. این قسمت همون آقای خوبی که میگه آقا من ملازم عقل شر قبول ندارم یه جایی میشه برش مستاخ پیدا کنیم اصل این که باید در مقام تضاهم ترجیح به دیمیه طرف رو میگه عقل داره حکم میکنه اصلا با استقلال داره ات مو به تجیفی بابل مزامه هیث و نه و کانه او اقللا غیر و ف الوازه جدا نه خود این عقل مستقل به تقدیم هم الال مهم فی مقام انتظار مطقا خب اون بحثی که ما فقط که خواندیم تو بحث شناخت سوال آیا آقای خوبی مطقا توانه اقل رو نفس میکنه یا توانه مثلا عقل در مقام کشف حکل رو نفت کردن اونجا توانش در کشف حکل رو نفت کرد ولی الان تو مقام امتصال که این مقدم بشی اون اونجا الان قبول داری خود این همی حکمونا پس الان اینجا باید بگیم یه استثناء خورد اونجا که فهمونتن سغرا نداره باید بگیم آه مطلق نیست بعضی جاهشون خود شما قبول دارید اصل ترجیح رو میگید عقلیه خب این پس یه بیان اونجا کلی فرمودن مستاق نداره بعد نتیجه بگیریم مستاقش نادره خب حضرت امامم تو این قسمت یه فقره که تو فقره نقل کنیم کتاب مکاسب جلد یک صفحه 335 امام در مکاسب محمد رم جلد یک صفحه 335 می‌فرمایم نعم العقل في مقام الامتصال يحكم باللزوم الا اعتراض من باب حفظ الغرز الاهم از فلان موارد باید خلاصه احتراز کرد چرا؟ چون که میگه آقا غرض اهم مقدمه عقل داره میگه فرط ترجیحی مقام الامتصال به حکم قلب غیر مرتبطن به مقام جعل الاحکام دو تا بحث مستقله عقل حکم بکنه که خلاص احکام شرعی چیست او یه بحث دیگه است. حرج در مقام اتصال به حکم عقلم یا بحث دیگه است در کتاب البي با تقریر مرحوم آقای قدیری صفحه 590 591 جمله جمله دیگه از امام هست فان المتاخر لو کان اهم ل لزم صرف القدر صرف القدر تفی به حکم العقل و این کان الاول اسبق یه اشاره کردم که تو مرجحات چنگانه تو ترتیبشان و اینا بحث هست این جمله میگه این کانال اول و اسبقه و فلان کمی تو اون بحثام هست میگه خود عقل حکم میکنه که ما با اگر این حکم یکی بحثی متأخر باشه بر اون اسبقه مقدم بشه اگه خاطر شرفتون باشه یه بحثی ما داشتیم که یکی از مرججهات این بود که از زمانی مقدم بشه اینجا الان حضرت امامی استطلاع دیگه میکنم کنم متأخر باشه متقدم باشه چیه بستگی داره که اگر یکیش اهم باشه اون رو بعد مقدم کردی. یعنی چی که مثلا زمانش جلوتر خب زمانش جلوتر باشه اون بعدی مهمتره به حکم چه کسی؟ به حکم عقل پس یکی از مرجحات بحث از بود یکی از ملاک ها اهمیت بود ایشان میگه آقا این رو با هم ترکیب کن اون از زمانی نمیشه یک مرجح آم باشه فرض کنیم حالا قبولم که بکنیم حالا به تعبیر من مطلق نیست کدام مهمه کدامش به وقتی از اون مرجحات درسته حالا در میان این دو تا میگه اهمیت اگه اهمیت داشته باشه بر اصل اس بر اسبقیتم میتونه مقدم باشه یک چیزی متأخر باشه ولی بر اون اسبقه وش جلوتر باشه خب این مهمتر دیگه ما تن به این میدیم پس نکته مهمی بود که اینجا می‌خاسته بگیم عقل اصل ترجیح اهم رو قبول می‌کنه یا نه اون ضرورت ترجیح اهم بحث کبراه گفت بله الان امام و اینا بودن اون تقسیم که دو در این تجیر این اینه... معالش به چیه اولا خود چه رو شده که به مقدم میشه می‌بینه اون میگه که الان اصبر مس نماز رکعت اول و رکعت دوم شما یه توان بیشتر نداری میگه آقا ببین این الان تو توضیح اون ملاک که اسبقیات اینجوری که الان این یختو گرفته این تکلیف دیگه الان این نافذه این خلاصه نفوذ این الان این منجزه این گرده رو گرفته حالا بعدا روکت دوم ببینن اصلا زنده است یا مرده ای اصلا چی گردنت تو فوقش اونجا میگه که آقا من دی قدرت ندارم دیگه قدرتم با عجز با تعجیز شرعی بود مرحوم شهید صدر بحث تعجیز شرعی نور زیاد میاره میگه ببین خود شما منو عاجز کردید من قبلا قدرت داشتم گفتی تو اولی امتصال کن چه جوری گفتی تو اولی اصلا وقتی که اولی رسید با دومی قرار نبود کار داشته باشم میگه آیه تکلیف کردنم گفته یا خامه گرفته میگه انجام بده میگم چش صراعا و طاعتا انجام دادم حالا که انجام دادم برای دومی قدرت نمان تعجیز شد اما برعکس شایه میشه اگه شما بگه آها بعدا من حالا درکت دوبار میزدم کی گفته شاید مردی همین الان قطعه صرف کن بله بفرمید شما را به این روژهان رو مستاد میبرید تو ماهیت و میگه درمیت تو خود این ماهیت هست چرا؟ یا از این مقدمی و روشان داره به من الان دو تا بحث میخوام بیارم یکی چرا یکی آیا عقل میتوانی نه بحث من سر قدرت عقل بود من میخواستم بگم ضرورت ترجیح اهم عقل اهم ببخشید عقلیه یا نه استطلاعشو کار نداشتم خودم یکی دو تا استدلال جدا آوردم الان اینجا من شاهد برای میخوام بیارم که مرحوم آقای خویی که گفتش آقا ملازمه عقل و شر قبول نداریم تو اینجا هم باید چون حرف طبیعتاً بزنه ولی دیدیم بعد گفتش که آقا اونجا ملاکات رو موکشف نمی‌کنیم علی دیگه فقره پیدا که علی که چون آقای علی دوستم معترض میشن میگن آقا شما اونجا میگید یه حرف نزنید حالا اینجا من می‌خوام بگم که آقا تو اصل ترجیح اهم عقل میتواند از لابل فرمایش آقای خودی درودم که میگه بله عقل اینجا خودش استقلال داره در تشخیص لزوم ترجیح اهم بحث مثلا ضرور تشخیص قدرت تشخیص اصل ترجیحه. اینجا هم از فرمایش امام همینو دارم ممکنه به بحث متأخر و اسفقتش کار ندارم آم. فقط این که میگه فینل متاخر لوکان اهم لازم از سرف قدرت فی به حکم العقین به حکم العربش کار داشتم اصلی طبان من دیم استطلالش که عقل چرا؟ بله بعد خدمت شما عرض کنم یه جمله دیگه از امام در همین تقریر مرحوم آقای قطیری در کتاب به صفحه 1590 تا همین همینجا میگه بلا کون نو کلامم این بلا اهمیت لعد ما علل آخر ترجیح ندارند. هر دو مساوی هستند فالحکم او و تغییر عقلن منج هم که ترجیح نداره خود تاخیر عقلیه میخوام میگم آقا تو اینجا اصل ترجیح عقلیست عدم ترجیح در تصاوی عقلیست است میگه بله عقلیه این رو فقط کار داریم حالا واسه سقراط از این منطق ممکنه واسه سقراط استفاده کنیم آ ولی برای ظهورش این به ذره بین میخوره خب پس حالا اینجا ما می‌خوایم بگیم شعر که میتونه معرفی کنه درست هرچی گفتیم بله عقلم میتونه خب بحث دوم اینو من اشاره بکنم و یه مقداری جمع جور کنیم بحث رو بحث شناخت مثل خب زبابت در واقع مرجحاته و موارد اهم و مهم من یه تفکیه کلی هم بکنم در واقع اینجا اسم بعضی از این مرجحات رو میذارم مرجحات اثباتی بعضیش رو میذارم مرجحات سبوتی یه مقدار این جایی جای کمک بکنه این تعبیر رو حالا لابلای بست فراموش نکنیم خب اینجا در بحث منابع کشف مرجعات و تشخیص موارد مرحوم ناینی دو طریق کلی رو از هم تفکیک کردن بهره گیری از ادله دوم تنا ملاحظه مناسبات حکم و موضوع از مناسبات حکم ما میگیم عقل میخواد بفهمه خب این عقل چه جوری بفهمه یه قدم داریم میویم جلو خب عقل چجوری بفهمیم میگه مساله الاهمیت تختلف با اختلاف مای استفاده من العدله و مناسبات الحكم بالموضوع خب ادله اشارهاتی دارن یعنی با از یه پاراگراف من میخوام نگاه کنید ازیت روش پیجوی شو اینا همینا در نظر بگیرید مهم اینه که گویید یه خط دو خسته خط چجوری استفاده کنید الان مس... ایشان فرمودن که مساله الاهمیت تختلف با دو تا چیز اینجا که یکی اهم مهم با دو زاویه میتونم تفاوت داشته باشیم یک تفاوت ادله دو مناسبت حکم من از این چه استفادهی دارم میکنم بگم آقا ایشان برای تشخیص موارد اهم و مهم دو طریقه کلی دارم گیری از ادله ملاحظه مناسبت حکم خب بحث منبش شناخت یعنی مساب مسادق اهم و مهمم که خب خیلی مهم اینجا در واقع بیاناتی که من داشتم یه قسمتش کمک میکنه به خلاصه این مواردی که اشاره کردیم اقلیست و این این فقره رو هم خدمت دوستان من بخوانم از این قسمت این فایل جا به میشه من این مقداری اون مدنی که میخوانم بخوانم کمی با تمرکز خوبی نمیشه ببخشید. لحظه از مرحوم هدایت صاحب هدایت المسترشدین مرحوم محمد طقی اصفوانی نجفی هدایت المسترشدین فی اصول اصول محالمدین جلد 3 صفحه 1586 صاحب هدایت وسائل اصول دو تا برادرن این آقای دکتر موسا نجفی و اینها از نوادگان یک از این بزرگوارانن که به مرحوم مالکشتر رو اینا می روستن مرحوم مهند نجفی هدایت رو مستشد توی این برادرشان سات فصول که تو نرمخصانی ها کنه بعضی جاها ها می روستن اسفانی ای... بعضی موقع می ایوان ایوانکیفی و رامینی ایتوان یه رو شاید اونجا داشته باشن ولی اینم هست ایشان می که که کماهو نه ببخشید این شاید به این ببخشید این قسمت رو ای چیزی که میخواستم عرض کنم آه. این بود که میخواستم عرض کنم تو اق شناسی الان همین تو بحث اق شناسی اینجا ما چه کار کنیم؟ چر می توانه شر نمی توانه فرزینه که خلاص آدم مکلفان یه حکم بیشتر نمی توان جاب کنم مثلا شناسی و مثلا مفسد شناسی و اینها خلاصه سر جای خودش نیاز به این هست که اهم و مهم رو ما بشناسیم موازنه کنیم سنجش مثلت و مقصده کنیم این مفاسد و مسائل هم اهم درجاتی دارن خب مثلا تو این مسادیق، الان کدام از این مسادیق مهمتره می بینیم که مثلا شاره یه عواردی گفته ایشان می فرما نماز اهمه کما هو المعلوم ملاحظت اجزاء سلات و شرایطه آه. ها معنها اهم و تکلیفات شریع و اهم من جمیل عبادات بل بل بلیتن نمیدام ملاب. یا شد هم کلیتن باشه اهم من جمیل بلیتن اهم من جمیل عبادات بلیتن مورد ابتلا خب ایشون میگه این اهمه تکالیفه. این خب هم بودن رو از کجا فهمیدیم؟ از شرق. خب یه جایی پس مستقشناسی نقلی داریم یه جایی مستقشناسی عقلی اینا به عنوان مصادقی هست مرحوم شیخ محمد رضا اسفانی صاحب وقایت الاسحان صفحه 323 تو مستقشناسی ها این رو عرض کنم و دید این قسمت رو ختم کنیم یا بمانه این قسمت بعدا نازم کنم وقتی گذشت الحمدالله رب العالمین